سوفین ها دام و سر حقه باز کرد بنیاد مکر با فلک حقه باز کرد بازی چرخ بشکندش بیزه در کلا زیرا که ارز شعبده با اهل راز کرد ساغی بیا که شاهد رعنای سوفیان دیگر به جلوه آمد و آغاز ناز کرد این مطرب از کجاست که ساز اراغ ساخت واهنگ هنگ بازگشت به راه حجاز کرد ای دل بیا که ما به پناه خدا رویم بیم زنچاستین کوتح و دست دراز کرد زنعت مکن که هر که محبت نراست باخت عشقش به روی دلدر معنی فراز کرد فردا که پیشگاه حقیقت شود پدید شرمنده رهروی که عمل بر مجاز کرد ای کب که خوش خرام کجا می رویبه ایست قرمشو که گربه زاهد نماز کرد حافظ مکن ملامت رندان که در ازل ما را خدا زهد ریا بینیاز کرد